اعلم ان امامك عقبتا كعودا وضمت پسرم بدون که در پیش روی تو گردنهای سختی است فیها از احسن حالا من المثقل کسی که در این گردنها سبط بار باشه بار بارها وزن حالشون بهتر از بار سنگینان تو گرد قبال و چهی سبوت بار باشه؟ بهتر میتونه را بره المخففی ها احسن و حالا من المسقل و البی و عل و حالا من ممسرف. کسی که با کندی بخواد از این گردن بره این حالش بدتر از این کسی که کس سریع را این از این گردن ها تو دفرست به مقصد زیاده هنهن هنه کنه از این گردن بره بالا این حالش بدتر بعد چی از این گردنه که رد شدی وقت چی ان محبت که به حالا محالا علا جنت او نا از این گردنه میری بالا بعدا چی میشه یا به بهشت میخوای وارد بشی یا به جهنم فرد لنفسک نفسی که قبل نزوله جا تو محیا کن پیش از اینکه اونجا وارد بشی یه جای خوبی بر خودت درست کن وقت المنزل قبل حلولک پیش از اینکه وارد اون منزل بشی مهیا کن و آماده کن فلیسه بعد الموت مستعتب دیگه وقتی موردی کار میگذاره دیگه جای تدارک نیست جای فکر کردن نیست جای تهیه کردن نیست خیلی دو کلمده هم راجع به این جهت ارز میکن فرمود اعلم ان امام که عبابتن که جلوی رویت راه های سخت راهای رو باید نشیس آیات رو خوند، بعد نشیس روايات رو خوند. یه جمله عمير المؤمنین سلام الله علي تون عجله داره. و متسع نکم لو آيان توم ما قد آيان من ما تمليم توم ل و وحل و سمي و اتا توم ولكن محدودن انتوم ما قد آيان و وکريم ما يترحله فجاء ولی اون چرا که مرده های شما دیده بودند، شما می دیدید هر آینه می شدید ناراحت بودید پول و هراس در دلتون پیدا می شد و هراین مطیع می شدید و دستورات خدا را اطاعت می کردید و می شنیدید ولی که فعلا پرده افتاده و نمی بینید و قریب و مایوت رحل نزدیکی که پرده برداشته بشه و ببینید ولی دی وقتی دی دیدید دیگه دی دی تمام گذشته گذشته که بنابراین سختی هایی که از اول مرگ شروع میشه تا آخر خیلی سخته ولی که باید خیلی در فکرش بود خیلی باید در فکرش بود ناراحتی هایی که از اولش که ابراهیم خلیل سلام الله علیه به عزمی شود به اینکه که مل... ملک الموت گفتش به اینکه من دلم میخواد با اون صورتی که بنده مؤمن خدا رو قبض روح میکنی تو رو با اون کیفیت ببینم مثلا به تعبیر بنده حالا امروز که ندیدم روایتشو به تعبیر بنده بهش گفت خب رو از اونور بکن اون روش از اون ور کرد بعد روشو برگردون یک جمالی دید و یک تراوت و لباس و زینت و مثلا شکلی دید که ابراهیم سلام الله علیه فرمود اگر برای بنده مؤمن هیچ جزایی نباشد مگر دیدن روی تو هرامینه براش بسته و بعد گفت میخوام تو رو به اون صورتی که بنده کافر رو قبض روح میکنی ببینم گفت نمیتونی ببینی توان دیدنش رو نداری اسرار کرد گفت رو تو از اون ور کن بعد روش رو از اون ور کرد و برگردون صورتی عجیب و غریب دید که من تو روایت از که امروز مراجعه نمیکنم ولی افتاد بیهوش شد بعدن که به آمد گفت اگر برای بنده کافر از میشد عذابی غیر از دیدن روی تو نباشد برای او بزن از اینجا شروع می این گردنه ای کذابی لجزعتم و وحلتم و سمعتم و اطعتم ولا که محجوبون انکن ما قد آیمو و قریبون ما یتره لسجا این گردنه دیگه این مقاید تفصیل گردنه رو بخونه باید بری روایات قبر رو بخونی روایات نکی رو منکر رو بخونی روایات سراط رو روایات میزان رو بخونی اله ماشاءالله فرمود ها سبو نفوسکم قبل انتو ها سبو. پیش از این که حساب شما رو بکشن خود تو نساباتونو بگشین فا این لقیامت خمسین موقفا قیامت پنجاه موقف دارد هر موقفی شهزار شه سال از سالهای دنیا بعد این آیه رو خوند فیلیان من کانم یقداره خمسین الف سنه پنجه هزار سال آدم سرگردون ولی بله هیچ کار مذابشم هیچکارشم هیچ کارشم نکنه همزوست سرگردون باشه یه جای هزار سال این عقبه یک هزار حضرت عبدالمنخفسی ها احسن حالاً من المسقل سعی کن بارت سبوک باشه بارت سبوک باشه سبوک از چی باشه از گناه باشه از حق الناس باشه و به خصوص حق و قدیما یادمه که در بعضی از تفاصیر روایت نقل شده وضعی وارد میشن در سهرهای کسی که خیانت کند به کسی با همون چیزی که خیانت کرده وارد میشه وقت روایت داره که یک کسی وارد میشه یه دونه گذاشته رو پشتش داره میاند شطر کسی رو به خیانت برده و در روایتی هزه صادق میفرماید اگر کسی از همسایی خودش یه وجب از زمینش رو به ناحق تصرف کنه روز قیامت وارد میشه در حالتی که تا اون اعماق زمین به گردنش توق شده و انداختن گردنش این بار سنگیناست با این بار سنگین میخواد وارد بشه ورمد المخفو احسن حالا من المسخل کسی که بارش سب و که حال و وضعش بهتره میگن سلمان سلام الله علیک در و زمان حکومت شاید از زمان حکومت اومد تا آخر از مشاد حاکم مدائن بود مدائن فایتخت انو شیروان بود نزدیک دجلس بلائن حاکم مدائن بود یه وقت آب دجله تغیران کرد و سیل آمد و آب تغیران کرد شهر رو گرفت شهر مدائن رو آب گرفت ملت ریختن این یکی فرششو داره میکشه اون یکی لاف کرسی میبره اون یکی بارشو میبره اون یکی صندوقشو میبره جی و داد و فریان سلمانم تمام داراییش یه دونه سفره بود و یه دونه کوزه آب صفره هر انداخت اینجا و کوزه هرم دست گرفت و رفت بالای کوه و ساد این ملتی که ریختن دارن زحمت میکشند کشن باراشونه میارن از تو آبا و گلا بیرون سلمان گفت آهای ایوه ناز ها کذا نجل مخفون سبوک بارا اینجوری زود در میرن ها کذا نجل مخفون زمرد المخفف احسن حالا من المثقل کسی که بارش سبک باشه این بهتر میتونه بره از اون بار سنگینا سعی کن بارش سنگین نباشه والبطیء اقبه به حال من المسرع کسی که کند بخواد بره این حالش بعده تو روایات داره که بعضی از بندگان مؤمن خدا از سرات برنده تر از شمشیر است و چند هزار نگم چند چقدر راهه ولی بعضی از بندگان خدا مثل برق مثل سرعت برق از سرات عبور می بعضی از بندگان و خدا مثل اسب که از سوار عصب میدود عبور میکنن بعضی ها مثل پیاده را میرن بعضی ها مثل بچه که تازه را افتاده با دست و پا چهار دست و پا را میرن بعضی ها هی میخوان بیوفتن هی دستشونو میگیرن هی میوفتن هی دستشونو میگیرن هی میوفتن تا با یه زحمتی خود شده نجات مود یه روایت هم اینم تون نکنم این هم میکنم ولی روایت دیگری هست که عرض می شد ملائکهی که موکل این هم در بهشت برای برنگان مؤمن خدا یه وقتی یه عدی تو بهشت دارد شما اینجا چکا میکنی؟ کجا اومده این شما اینجا؟ رسول الله می اقوام من احلبیت من اح... امتی اقوامی از امت من هستن که خدای تعالی به اینها به حال میده از قبر که بیرون میان یک سره پرواز میکنن میاد تو میگه شما کجا بودین از کجا اومدین شما سرات رو دیدین یا سرات ندیدین شما حساب رو دیدید حساب ندیدین میزان رو دیدید میزان ندیدین جهنم رو دیدید یا و جهنم رو ندیدین شما کی شما از کدام امت هستید یا ما از امت محمد صلی الله علیه <تصفيق> خلاصه مطلب خلاصه مطلب اون که شما کارتون چی بوده و چطور شده که لایق این مقام شدید؟ چطور شد که لایق این مقام شدید؟ از شد چطور شد که حد دسونا به اعمالکم چه عملی داشتید که لایق شدید که اینجور مثل برق سریعتر از برق فراز کنید و اصلا سرات را نبینید چطور شد؟ قالو خسلتان ما دو صفت داشتیم و به فضل و رحمت خدا لایق اینجا می شدیم گفتن اون دو صفت شما چی بود؟ اول نارزا بالیثیر مما قسم الله لنا اولا اگر خدا روزی کم به ما میداد ما راضی بودیم او وقتی متعارفنا بودیم فقیریم راضی بودیم یکی و کن نا اذا خلونا نستحي ان اگر تنها هم بودیم از خدا خجالت میکشیدیم که گناه کنیم یعنی تو تهنهی هم گناه نمی کردین و پیس که تو گناه نمیکنه کنه منظر به طریق قولا گناه نمیکنه. گناه نمی خجالت می کشیدین میگن حق است برای شما یک چنین مقامی که سیزاوان بنابراین المصر او احسن حالا من البتی یا البتی او اقبه حالا من المصر. جس سریع فرمود به این که بر این گذرنه ها رو فرمود و اینکه بر صراط عل در زیل آیه شریفه خدای تعالی در در و و ان ربک عل بالمرصاد در مرصاد است در کمین فرمود مرصاد جاییس و مقام و عقبه برسرات بر صراط ان المرصاد قنترت عل لا یه عبد ها به مظلمته هیچ بنده ای که ظلمه به کسی کرده نمیذارن از اونجا حق کسی رو مال کسی رو آبروی کسی رو حد که از کسی کرده نمیذارن از اونجا رد و را تو داره یه درهم مال مردم اگه نداره, چه؟ نداره تو بده که نداره که بده هفتصد نماز قبول شدهش رو میدن در مقابل درهم با اون طبق کاره هفتصد نماز قبول شده اگه داشته باشه هفتصد نماز قبول شدهش در مقابل در اینکه از مال مردم خورده خیر خوب فرمود البتی و اقبه و من المسقل فرد از در ارض می شود به اینکه که منزلک قبل حلولک و وقت المنزل قبل حلولک پیش از اینکه که بری اونجاها کسیاتو مهیا کن و جای تهیه کردنش اینجا زیرا بعد از مرگی جای برگشتن جاش اینجا در ذیل آیه شریفه فل انفسهم من عمل من الذین آمن و عمل و صالحات فل انفسهم یمحدون عرض می شود به اینکه حضرت صادق می فرماید اِنَّ العمل يذهب کار نیکی که تو میکنی این کار تو میره در بهش جا برات میکنه مانند کسی که غلامش رو میفرسته میخواد مسافرت بره غلامش رو میفرسته در بین راه یه جا براش معین کنه به تحبیر منده فرشی بیاندازه قضایی درست کنه شایی درست کنه تا این منده خدا برسه این عمل صالح برای انسان جا درست میکنه تا برسه یب الرجل رجل غلامهو تا یفر ثمنا قرأ حضرتی رو فرمود و بعدن این آیه رو خون عمل الذين و عملوا الصالحات فلانفسهم يمهدون تمام شد پیامبر صلی الله علیه و فرمود در وقتی که شب معراج وارد شدم مرا بردند به بهشت دیدم که مشغول بنایی هستند یه ساختمون عجیبی که یه خشتش طاس یه خشتش نقره اونوری دارم میم میم چی میز و قصد رو می چی میکن؟ می بعد میریم گاه یا اینو وای میزن. پریدم چرا توقف می گفتن به تعبیر من ما منتظر مسلهی مسالله باید برای اون بفرن آجر باید بفرن فرمود مسالله شما چیست؟ گفتن سبحان الله ولا لا ارحال الله و لله، تو این کارهای خیلی که میکنی همه برای تو از میشود اتاق درست میکنه جا درست میکنه باغ درست میکنه از میشود ابراهیم خلیل در شب معراج به پیغمبر گفت یا رسول الله از طرف من به امت سلام من رو برسون و بگو بهش یک زمین خیلی خوبی داره و درخت خیلی بفرستید اینجا که خوب پرورش میده و گفتش درختش لا اله الا الله و ذکر خداست بعد حضرت این دقت کلمه رو که بر مردم نقل کرد یکی سیارس کردی و رسول الله پس ما خیلی درخت داریم اونجا فرمود بله درخت خیلی دارید ولی آتشی نفرستید که درختها را بسوزاند و این فال وقت منزله که قبل حلولش پیش از این که وارد بشه یا تو ماهیا که خیلی خوب صلی الله و محمد صلی الله و محمد و و اما از این شر دین که فاینکم لو آیان تو ما قد آیانم منی ما تمین کن سفیر حکتار نهج الباقی والم نم الحمد لله فارغ گفتم حساب همان قضیه حدیثنا و اعمالكم صفحه 25 جلد 103 بهار جدید 103 بهار جدید اون که فقیرهایی که پرواز میکنن از قبر میرن به بهشت ان العمل الصالح یذهب الی الجنه فیا مهدل صاحبه فلانفس یمهدو جلد سه تفسیر برهان به بهشت وارد شدم و دیدم ملائکه خانه می‌سازند من ذهب و فزذه صفحه 177 جلد 8 بهاره جدید اِنَّ رَبَّكَلَ بِلْمِرْسَاتِ قَنْتَرَتُونَ عَلَفْتِعَات شست و شیش جلد هشت بهار جدید بعضی از اثرات مانند برغبور میکنند بعضیا چنین بعضیا چنان صفحه شست و چهار جلد هشت بهار جدید هر کسی که به همسایه یک وجب زمین خیانت کند صفحه سد و جلد یک سفینه اون حاصل با انفرسه اونم جاشو ننوشتم اونم ننوشتم اینا آرد یه از ذهنم بود همینجوری از خارجه سلمانم ننوشتم و اما حدیث از اشعار این آقای حسان صفحه 112 جلد سی بهار جدید جلد سی این اشعار هستانه ببره بایات قدیر دیگه چی بخون اونجا اینا رو دیگه من همین جوری تو ذهنم همینجا اومد و گفتم شاید تو همون حدیث قدیرم داره همون باب سی تو جلد سی در ضمن حدیث